نقمه ای از آتش و یخ بازی تاج و تخت راوی آرش هریم آمدی تدوین سهیل بابایی پخش از کانال والریا سراباز وقتی جنگل در اطرافشان شروع به تاریک شدن کرد گرد با اصرار گفت دیگه باید برگردیم وحشی هم مردن سرویمان رویس با مختصر لبخندی پرسید مرده ها تو رو می‌ترسونم؟ گره تن به طله نداد پیرمردی با بیش از پنجاه سال سن بود و آمدن و رفتن این بچه اشرافی ها را دیده بود مرده مرده است ما کاری با مرده ها نداریم رویس با آرامه پرسید اونا مردن؟ چه مدرکی داریم؟ ویل اونا رو دیده حرفش که میگه مردن برای من مدرک کافی ویل میدانست که یا و دونا به بحث خواهند کشند آرزو داشت که این اتفاق دیرتر میفتاد ازاره نظر کرد مادرم به من گفته که مرده ها حرفی برای گفتن ندارم رویس جواب داد دایه من هم همینو بهم به گفته هیچ وقت چیزی رو که در آغوش زنها میشنوی باور نکن ویل حتی از مرده ها میشه چیزهایی یاد گرفت انکاس صدایش در هوای نیمه روشن زیادی بلند بود گرت خاطر نشان کرد راه طولانی در بیشتری هشت یا شاید نه روز و میشه سروی ما رویس بی علاقه با آسمان نگاه کرد هر روز این حدود موقع شب میشه از تاریکی میترسی کرد ویل متوجه تنش دور دهان گرد شد و خشمی که به زحمت در چشمان زیر کلاه سیاهش محار شده بود. گره سال از عمرش را در خدمت نگهبانان شب نشب بود از پسر بچگی و کل مردانگی و عادت نداشت که حرفش سبک شمارده شود اما موضوع بیش از این بود. پشت قرور جریه دار شده ویل میتوانست چیزی دیگری را پیرمرد مارتز کند میشدن را چشید فشار عصبی که داشت به مرز ترس نزدیک میشدویلیل در بیقراری او شریک بود چهار سال را روی دیوار گذرانده بود اولین بار که به با آن طرف دیوار فرستاده شده بود تمام قصه های قدیمی به سرعت یادش آمده بود و دل و رودهاش را آب کرده بود بعدا به این موضوع خندیده بود اکنون تجربه صدها گشتنی را داشت و سرزمین تاریک بی که جنوبی ها جنگل اشباح می نامیدند دیگر چیزی نداشت که برای بترساند تا امشب امشب چیزی فرق داشت این تاریکی شدتی داشت که موهایش را سیخ میکرد نه روز بود که می رفتند. به شمال و شمال قرب و سپس دوباره به سمت شمال دورتر و دورتر از دیوار به دنبال رده یک گروه از مهاجمین محشی هر روز بدتر از روزی بود که قبل آن گذشته بود امروز بدترین بود بعد سردی از سمت شمال میوزید و درختان را مانند موجوداتی زنده به جنبش میانداخت ویل تمام روز حس کرده بود که چیزی تماشایش بود چیزی سرد و آشتی نپذیر که از او خوشش نمی آمد گرد نیزان را حس کرده بود ویل با تمام وجود می خواست که چهار نه به سمت امنیت دیوار مدازد اما این احساسی نبود که با فرمانده خودش مطرح کند مخصوصا با همچین فرمانده سر سروی ما کوچکترین پسر خاندانی کهن با تعداد زیادی وارس بود جوانی بود خوشقیافه 18 ساله با چشمان خاکسسری موقر و, خاک و به باریکی چاپو شوالیه روی اسب جنگی سیاه خود بالای ویل و گرد که روی اسبهای کوچکتری بودند قد کشیده بود پوتین چرمی سیاه شلوار پشمی سیاه دستکش سیاه پوست و موشکور و روی لایه های چرم و پشم سیاه زرهی با حلقه های ظریف سیاه پوشیده بود سرویمار کمتر از نیم سال بود که از برادران قسم خورده شب شده بود ولی کسی نمی بگوید که برای حرفش آماده نشده بود حداقل تا جایی که به با کمد لباس مربوط می شد او اوج افتخاراتش بود پوست سمور، زخیم و سیاه، بدل یک گناه گرد سر میز شراب به بقیه سربازان گفته بود شرط می‌بندم که خودش همه اونا رو کشته جنجوی قهار ما کلی کچولوی سمرو رو پیشونده و کنده همه خندیده بودند ویل با خودش فکر کرد که دستور گرفتن از مردی که موقع باد به اون میخندی سخت است گرد نیز حتما چنین احساسی داشت. گرد گفت، مرموند گفت که باید اونا را ردگیری کنیم و ما کردیم. اونا مردن، دیگه مزاحم ما نمیشن سواری سختی پیش روی از این هوا خوشم نمید اگه برف بارو برای اون دو هفته طول میکشه و برف بهترین اتفاقیه که میتونیم توانیم امیدوار باشیم هیچ وقت توفان یخ دیدید قرمان به نظر نمی که بچه اشرافی حرفای گدر را می با رفتاری ها از بیعلاقیگی و بیعتنائی تیر شدن شفق را بررسی می ویل به حد کافی به همراه شوالیه سواری کرده بود که متوجه باشد وقتی او چنین رفتار می کند بهتر است که مزاحمش نشد. نشود دوباره به این دیویل ویل تمام جوزیت چیزی رو از قلم ننداز ویل قبل از پیوستن به نگهبانان شب شکارچی بوده در واقع سید قاچاق می کرده. در جنگل ملیستر در حالی که پوست یکی از گوازهای ملیستر را میکند توسط سر و ملیستر دستگیر شده بود و مجبور شده بود بین پوشیدن لباس سیاه یا قطع یکی از دستان خود یکی را انتخاب کند هیچ کس نمیتوانست در جنگل بی صداتر از ویل حرکت کند و برادران سیاه پوش خیلی زود این استعداد او را کشف کرده بودند ویل گفت پردوگاه دو کیلومتر جلوتر پشت لبه اون تپه و کنار یک رودخونه است. تا جایی که جرأت داشتم نزدیک شدم هشت نفر هستند هم مرد و زن. بچه ندیدم یک سایبان روی صخره درست کردند برفون کاملا پوشنده ولی هنوز قابل تشخیص بود آتش نمی ولی محل چاله ی آتش کاملا معلوم بود هیچ کس حرکت نمی کرد. خیلی تماشا کردم هیچ انسان زنده اینقدر بی حرکت دراز نمیکشه. اثری از خون دیدی؟ ویل اقرار کرد؟ خب نه اسلحه ای دیدی؟ چند شمچیر، چند کمان یک مرد تبرداشت با ظاهر سنگین، دولبه و سلاح خشن روی زمین درست کنار دست مرد به وضعیت بدنها توجه کردی؟ ویل شانه بالا انداخت دو نفر به سخل تکیه دادن بیشترشون روی زمین هستن مثل اینکه افتادن رویز پیشنهاد کرد یا خوابیدن؟ ویل با اسرار گفت افتادن یه زنباله درخت بین شاخها بود یه دیده بان. لبخند سوستی زد نگذاشتم منو بیدم وقتی نزدیک شدم دیدم که اونم حرکت بود. در خلاف میلش لرزید رویس پرسید لرز داری؟ ویلا هسته گفت یکنه به خاطر باد سرما شوالیه جوان به سرباز موسه نشرو کرد برک های یخصده را باد می برد و عصب رویس بیقرار جلو مدید سه راحت پرسید فکر میکنی چی ممکنه این آدمان رو کشته باشه گرد؟ گرد با اطمینان کامل گفت کار سرما بیده من زمستون قبلی یخزدن نفر رو دیدم همین طور زمستون قبل از اون وقتی که بچه بودم همه درباره برف ورف پونزه متری و بادمون جمعت کنندهی که سوز کشان از سمت شمال میوزه حرف مزمه اما دشمن واقعی سرماست سرما بی صداتر از بیل سرابتون میاد اولش می لرزی. دندونات صدا می پات رو به زمین میکبی و خواب شراب شیرین آتش گرم میبینی میسوزون واقعا میسوزون هیچ چیز مثل سرمانه میسوزونه اما فقط برای مدتی بعدش به شما نفوز میکنه و شروع میکنه به انباشت شدن در بدنتون بعد یه مدت قدرت چنگیدن نداری نشستن یا خوابیدم راحت تره. میگن که نزدیک آخر کار درد حس نمی کنی. اولش بی رو و خوابالید میشی همه چیز در نظرت محف میشه و بعد مثل فرو رفتن به دریایی از شیر گرم میشه آرامش بخش چه فساحتی گرفت فکر نمی مثل داشت رو داشته باشه. سر ما منو هم گرفته عرباب زده گرد کلا را آقاب کشید و به سرویمار فرصت کافی داد که جاهایی را که زمانی گوش هایش متصل بودند تماشا کند دو گوش سه انگشت پا و انگشت کوچک دست چپم قافل شدم. فردامم برادرم رو سر کشی کش پیدا کردم منجمد و با یک لب خند روی صورتش سرویمار شانه بالا انداخت باید دباس گرمتر بپوشی گرد. گرد و بچه اشرافی چشم خورده رفت. زخمهای زخم‌های و سوراخ‌های گوش. جایی که استاد ایمون لاله گوش را بریده بود از خشم قرمز شدند. وقتی زمستون برسه میبینم که چقدر گرم میتونه بپوشی. کلاش را بالا کشید. ساکت و عبوز روی اسبش کرد. ویل شروع به صحبت کرد اگه گرد میگه که سرما بوده هفته ای گذشته قره نگهبانی به تو رسیده ویل بله قربان. هفته نبود که چندین نوبت نگهبانی به ویل نرسد پسر چه منظوری داشت و دیوار رو چطور دیدی ویل عقب کرد گریه میکرد حالا که بچه اشرافی این موضوع را گوش زد کرده بود ویل به وضوح متوجه شد منامون که نیست یخصاده باشم نه وقتی که دیوار داره آب میشه هوا به حد کافی سرد نبود روی سرتکان داد باهوشی، حوشی تا یه هفته گذشته چند بار مختصر و گاه به گاه بوران مدت داشتیم اما مطمئناً سرمای به اون حد شدید که هشت انسان بالغ رو بکشه نداشتیم. بذار یادآوری کنم انسانایی که پوستین و چرم پوشیدن سرپناه و امکان روشن کردن و آتش دم دستشون. شبالیه به خودش می‌نازید. ویل، ما رو به اونجا راهنمایی کن. این مردها رو باید به چشم خودم ببینم. و دیگر کاری نمیشد کرد. دستور داده شده بود و شرف آنها را به اطاعت کردن مقید میکرد. ویل در جلو به راه افتاد. عصب جولیده کوچک او راه را با احتیاط بین بوتا انتخاب میکرد. برف مختصری شب پیش نشسته بود و سنگ ها و ریشه ها و چاله های مخفی درست زیر لایه های برف در انتظار افراد بی بودند. سپس سر مار باعث به سیاه بیوثلش آمد. از به جنگی برای گشتنی انتخاب مناسبی نبود. اما سعی کنید که این را به بچه اشرافی بگویید. گرد عقب صفت می آمد. سرباز پیر ضمن سواری زیر لب با خودش حرف می شفق تیره تر شد. آسمان بیابر به رنگ بنفش تیره، رنگ خون مردگی کنه در آمد. سپس بنفش محو شد تا سیاه شد. ستاره ها در ماه نیمهلال تلو کرد ویل به خاطر نور سپاس بود وقتی ماه کاملا بالا آمد رویس گفت حتما میتونیم با صورت بیشتری حرکت کنیم نبای نصم ترس ویل را گستاخ کرده بود شاید شما دوست داشته باشید از جلو برید سرویمار منت پاسخ دادم را تریف کرد جایی در جنگرد یک گرگ سوزه می کشید ویلس بشرا به زیر یک درخت آهن قدیمی هدایت کرد و پیاده شد سر مار پرسید چرا ایستادی؟ بهتر که بقیه راه رو پیاده بریم قربان همین بغل پشت اون تپس رویس مدتی ایستاد و متفکرانه به خیره شد باد سردی بین درختان زمزمه بیکید حال تو خز سمور پشت سرش به مانند چیزی که نصف جانی دارد به حرکت دار آمد. گرد زمزمه کرد یه چیزی ایران داره. شغاله جوان با تأخیر به او لبخند زد. واقعاً، گرد پرسید نمیتونی حسش کنی؟ به تاریکی گوش بده. ویل میتوانست حسش کند. در چهار سالی که نگهبان شب بود، هیچ وقت اینقدر نترسیده بود. چه چیزی بود. باد، خشش درختها یه گرگ. کدومی یکی زهر ترکت کرده گرفت وقتی گره جواب نداد، رویس با وقار از این پایین آمد. اسبش را با فاصله زیادی از دو اسب دیگر محکم به یک شاخه بست و شمشیر درازش را از غلاف بیرون کشید. جواهرات روی دستیان آن و معتاد روی فولاد برگنزد سلاح با شکوهی بود و از ظاهرش معلوم بود که تازه ساز است ویل شک داشت که تا حال از روی خشم به حرکت درآمد آمده باشد ویل هشدار داد اینجا درخت به با هم نزدیک هستند شمشیر دست و پا بهتر برد بهتره چاو در بیارد جوان گفت اگر راهنمایی لازم داشته باشم می برسم گرد اینجا ببین از از پا مرحبت ها گرد بیاده شد آتش لازم داره ترتیبشو میدم. چقدر احمقی فیر مرد اگر در این جنگل دشمنی وجود داشته باشه آتش خبردارشو میکنه دشمنان دیگه ای هستند که آتش دور نگهش می خرس ها دایرو وولف ها و چیزایی دیگه دهان سرویمار صفت شد آتش بی آتش کلاه گرد روی صورتش سایه میانداخت اما ویل می توانست برق خشمی را که متوجه شوالیه بود در چشمان او ببیند برای یک لحظه نگران شد که پیرمرد شمشیرش را خواهد کشید شمشیر سلاح کوتاه و زشتی بود رنگ دستش بر سر عرق رفته بود لبهش به خاطر استفاده زیاد دندان برداشته بود اما در صورت بیرون کشیده شدن از خلاف، ویل سر زنده ماندن وش اشرافی حتی یک سکی سیاه هم شرط نبیبست. سر سرانجام گرد به پایین نگاه کرد زیر لباهسته گفت آتش بیادش را موافقیت تلقی کرد و به سمت ویل برگشت راه نشون بده ویل راهشان را از بین درختان پیدا کرد سپس شروع کرد و بالا رفتن از تپهی که در آن ستیق زیر یک درخت و کاج بلند نقطه دید خوبی پیدا کرده بود زیر لایه نازک که برف زمین مرتوب و گلی بود جای پالیز بود و سنگ ها و ریشه های مخفی برای سرنگون کردن آدم آماده بودند ویل موقع سود صدایی در نمی آورد. پشت سرش می شنید که بچه اشرافی به شاخه ها که به شمشیرش گیر می و پای خز خزه به را می آهسته آهست فوش می داد. درخت بزرگ درست در بالای ستیق تبه بود. جایی که ویل می دانست پیدایش خواهد کرد. پایینترین شاخه هایش تنها یک قدم از زمین فاصله داشتند. وی به شکم روی برف ها گرد راست کشید. زیر شاخه ها خزید و به مفطه خالی در پایین نگاه کرد. قلبش از زره با برای یک لحظه جرأت نفس کشیدن نداشت. محتاب در پایین مفطه خاکستر های چاله آتش سایبان پوشیدش از برف صخره بزرگ و نهر نیم یخ را روشن می همه دقیقا به همان شکل چند ساعت پیش بودند. آنها رفته بودند. همه ی جسدها رفته بودند. ویل پشت سرش شنید ای خدا. سروی مار روی با شمشیر شاخه ای را برید و به برسید بادی بعدی که از پایین می آمد پا را بالا میزد کنار درخ شمشیر در دست در زمین از ستارگان با شکوه تمام در معرض دید همه ایستاد. ویل مسرانه زمزمه کرد دراز بکش یه چیزی ایراد داره رویز حرکت نکرد به محبته خالی نگاه کرد و خندید به نظر میرسه که مرده های تو به اردوگاه دیگه ای رفتند ویل صدای ویل در نیامد دنبال کلماتی گشت که به ذهنش نمیرسید امکان نداشت چشمانش جلو و اردوگاه را گشتند و روی تبر ثابت شدند یک تبر جنگی دولبه هنوز در همان جایی که آخرین بار آن را دیده بود. روی زمین بود. یک سلاح با ارزش سرویمار دستور داد. بلن ویل کسی اینجا نیست. قایم شدن زیر بوتها قابل قبول نیست. ویل با اکراه کرد. سرویمار با نارضایتی او را بلند کرد. من با شکست در اولی معمولیت گرسنی خودم به کسر بلک برنامه گردم. این آدم ها رو پیدا بکنم. اطراف را دید زد. برو بالای درن خجله کن. دومالا بگرد. ویل بدون حرفی برگشت. بحث کردن فایده نداشت. باد تحرک داشت. درست از بدن ویل میگذاشت. به طرف درخت رفت و شروع به بالا رفتن کرد شیر به زودی دستهایش را چسبناک کرده بود و بین سوزنها مخفی شده بود ترس رودهاش را مثل غذایی غیرقابل هضم مسدود کرده بود دعایی برای خدایان بی اسم جنگل زمزمه کرد خجرش خنجرش را از غلاف درآورد آن را بین دندانهایش گذاشت تا دو دستش برای بالا رفتن آزاد باشد مزهی سرداهن در دهانش به او احساس آسودگی بخشید آن پایین بچه اشرافی ناگه داد زد اونجاست ویل عدم اطمینان را در این سوال حسید بالاتر نرفت گوش داد تماشا کرد جنگل پاس افتر هشخش صدای آب همراه شکستن یخ از نه یک چوب برفی در دور است. دیگران صدایی در نیا ویل در گوشه چشمش حرکت دید اشکال سفید که بین درختان حرکت میکردند سرش را برگردند یک لحظه سایی سفیدی در تاریکی دید سپس اثری از آن نبود شاخه ها با باد به ملایمت منطقان میخوردند و یکدیگر را با انگشتان و چوبی میخورند ویل برای اختار دادن دهانش را باز کرد ولی انگار صدا در گلیمیش یخزد شاید اشتباه کرده بود شاید تنها یک پرنده بود یا یک روی برف یا خطایی دید به علت محتم به هر حال مگر چه دیده بود سر بیمار داد زد ویل کجایی؟ چیزی میبینی؟ ناگهان دوچار دلهور شده بود و شمشیر در دست آرام دور یک دایره میچرخید حتما مثل ویل حسش کرده بود چیزی برای دیدن وجود داشت بهم جواب بده چرا یک دفعه این همه سرد شده؟ سرد بود ویل می لرزید شاخه را گرفت صورتش سفت به تنه درخت فشرده شد شیری چست را روی گونهش حس میکرد. سایه از ظلمات جنگل خارج شد جلوی روی سیست دارد. بلند قد و لاغر و خشکی استخوان قدیمی با پوستی به شیر بود زره شنگار با حرکت تغییر رنگ می داد یک جا به سفیدی برف تازه به زمین نشسته جای دیگر به سیاهی سایه همه جا با لکه های خاکستری، سبز درختان با هر قدم که بر می ترها مثل حرکت محتاب روی آب تغییر میکردند ویل خروج طولانی نفس از سینه سروی رو از راشید بچه اشرافی اختار داد جلوتر نیا صدایش مثل یک پسر بچه دورگه بود پاتوی درازش را روی شانه هایش تا دست آزاد باشند و شمشیر را با هر دو دست گرفت باد متوقف شده بود خیلی سخت بود آدر با قدمی بی جلو آمد در دستش شمشیر درازی بود که نظیرش را ویل به عمر ندیده بود هیچ فلز مسئول بشر در ساخت آن تیغ به کار نرفته بود با محتاب روشن بود نور را بور میدند کریستالی چنان باری که وقتی از کنار دیده میشد تقریبا از نظر ناپدید میشد درخش آبی محوی در اطراف لب داشت و به نحوی ویل فهمید که از هر تیغی برنده تر است سرویمار با شجاعت و مقابل با او رفت پس برقص تا برخصی شمشیرش را کاملا بالایی سر بود دستش از وزن شمشیر می لرزید. شاید هم به خاطر سر بود اما در این لحظه به فکر ویل رسید که او دیگر یک پسر بچه نیست بلکه قضوی از نگهبانان شب است آدر مکس کرد ویل چشمانیش را دید آبی رنگی امیغ تر از هر چشم آبی در انسان یک آبی که مثل یخ می‌سوزد. سوزد چشم روی شمشیر ثابت شدند که لرزان بالای سر گرفته شده بود و درخشش سرن مهتا روی فلز را تماشا کرد و مدت یک سرمان قلب بید اجازه این بودن به خودش همسانهای اولی بی صدا از خارج شد نفر، چهار پنج. زرویمار شاید سرمایه همراه آنها را حس کرد. اما هیچ وقت آنها را ندید و صدای آشان را نشد ویل باید خبر میداد. این وظیفهش بود و اگر انجام میداد، داد علت مرگش شد. در زید درخ را بغل کرد و ساکت بود شمشیر بی رنگ به حرکت درآمد آمد با فولاد به مقابل با آن رفت وقتی تیغ ها به هم خوردند صدای برخورد فلز روی فلز به گوش نرسید تنها صدایی زیر در آستانه شنوایی انسان بلند شد که به یک جیغ از روی درد شد باید. رویس جلوی ضربه دوم را گرفت سپس سومی سپس یک قدم عقب رفت چند ضربهٔ دیگر رد و بدل شد و باز عقب رفت پشت او در چپ و راست در همه طرف تماشاگران صبورانه و ساکت ایستاده بودند ترهای متغیر زره ظریفشان آنها را در جنگل عملا نامری می ساخت. با این وجود برای دخالت اقدامی نکردند دوباره و دوباره شمشیرها به هم خوردن تا اینکه ویل میخواست گوشهایش را از صدای زاری برخورد آنها بپوشاند سروی سرویمار دیگر داشت نفس نفس میزد بخار تنفسش زیر مهتا دیده می‌شد. تیغه شمشیرش برفرزده بود نور آبی روشن روی تیغادر در بعد شمشیر روز کمی دیر بالا شمشیر بیرنگ زره را زیر بازوی او برید ارباب جوان از درد داد کشید خون روی حلقه های زنجیر جمع شد خون در سرما بخار می شد و قطرات هر جا که روی برف می مثل آتش سرخ به نظر می رسیدند انگوش های سروی روی پهلویش کشیده شد تسکش اشاغوشده به خون از بدنش فاصله گرفت. آدر چیزی به زبانی گفت که ویل متوجه نشد. صدایش شبیه به شکستن روی دریاچه بود و کلمات مسخره میکردند. سر و شجاعتش را یافت. داد کشید به خاطر رابرت شمشیر شمشیر پوشیده شده از برفک را با دو دست بلند کرد و با تمام توان از پهلو زر بزد فریادی در تاریخی جنگل منکست شد و از شمشیر ست تکی تیز مانند بارانی از سوزن پخش شد ریس به زانو افتاد و چشمی داشت را پوشند خون بین انگشتانش جمع شد اینگار که علامتی داده شده باشد تماشاچیها با هم جلو رفتند. در سکوتی مرگ بار شمشیرها بالا و پایی رفتند. سلاخی سنگ های بیرنگ زنجیر را به سادگی اپریشن می گردند. ویلچش پایش را بزند. و دران پایین صدا و خنده های به تیزی یه خان وقتی شهامت نگاه دوباره را یافت، وقت زیادی گذشته بود و کسی در پایین نبود. در حالی که ماه به آرامی روی آسمان سیاه میخزید، بالای درخت باقی و به زحمت جرأت نفس داشت. سرانجام در حالی که از گرفته بودند و انگشتانش از سرما کرخت بودند، پایین آمد. بدن رویس به صورت روی برف افتاده بود. توی سمور در چندین جا بریده شده بود. به این شکل بیجان روی زمین میشد دید که چقدر جوان بود؟ یک پسر. چند قدم دورتر آنچه از شمشیر باقی مانده بود را یافت. تیغه کوتاه آن به مانند درخت ساقه زده شامل چندین تراش یککش بود. ویلزانو زد. با احتیاط به اطراف نگاه کرد و شمشیر را برداشت شمشیر شکسته مدرک او میشد. گرد متوجه مفهوم آن خواهد شد و اگر او نشود مطمئنان آن خرس پیر، مرموند یا استاد ایمون متوجه میشدند. شدند گرد هنوز با اسبا انتظار میکشید. باید اجله می کرد ویل برخواست. سروی ما رویس بالای او ایستاد لباس های اعلایش پاره پاره بودند جایی سالم روی صورتش نبود یک دکه از شمشیرش در مردمک سفید چشم چپش فرو رفته بود چشم راست باز بود مردمک رنگ آبی میسوخت میدید. می دید شمشیر شکسته از انگشتان بی اراده افتاد ویل برای دعا کردن چشمانش را بست دست درازی روی گونههایش کشیده شدند سپس دور گلویش سفت شدند آنها زیر بهترین دستکش پوست موش کور و آغشته به خون بودند با این وجود تماسشان به سردی یخ